بسم الله الرحمن لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله اللهم جميع اجمالا متعرض کلمات استاد هم شدید به خاطر که مثلا به عنوان و مراجعه شما در منزل باشه در این بحث که این فیم یعنی این شروعا فی نفسه حرام نیست به عنوان تمرد و اسیان و حتی حرمت مولا حرام میشه این بحثی بود که ایشون از صفحه 21 در این زلد 47 متعرض شدن اون وقت وجوهی ذهه کردن که از کم مهمشون بچه ثبوته و دوم خیلی چیز نداره با خلاصش اینه که این تعلق قط یوجه با قبح این اشتار بود و از کرده مرگوم ناینی ادعای وجدانی کردن که تعلق از زیادت مقبله نیست و استاد اشتار فرموده بودن و آسان امرشون قبول کردن که قبح فعل متجربه ها رو قبول داریم لیکن به عنوان تمرد یعنی این شرب ما به عنوان تمرد قبیه لکن این در صفحه 25 بعد وارد بحث به اصطلاح خودشون کبرا شدن که قبح فعل عقلن یه سلزم حرمت همون شرعن حالا که این فعل قبیه هست به عنوان تمرد یعنی شرب آب به عنوان تمرد قبیه هیشون قبول نکردن هست مرمونانی و از وارد این کبرا شدن که آیا اگر قبهی با عنوان تمرد و با عنوان اسیان قبه پیدا کرد آیا خرمت هم پیدا بکنه یا ایشون این رو قبول نداره چون میگن این به قاعده ملازمه است و قاعده ملازمه به اصطلاح یا تمام نیست یا در ما نحنفی جاری نیست به تعبیری چند این بحث قاعده ملازمه بلیشون متعرض قاضی ملازمه شده قاضی قاعده ملازمه کل ما حکم به هل عقل حکم به شر قاضی معروف این به لحاظ کتابت هم عرض کردم کل ما را منفصل به کل ما از کردم اگر کل ما متصل باشه کل مبنی بر فرد میشه دائما کل خونده میشه مبنی بر فرد و ما امزار است، و سور شرطیه کلیه قرار میگه یه شرطیه کلیه و اما کل ما ما موصوله هست و منفصله و کل معرب میشه مرفو و, مرفو و منصوب و بیزون میشه مکسود و بخصی رفع کرد این حالات اعراب رو قبول میکنه این قاعده اینه که کل ما حکم به العرب کل شیعن حکم به العرب حکم به شرد این اسمش یا عکسش هم گفتن کل ما حکم به شر حکم به لا. این قاعده ملازمه رو الان در کتب اصول ما متعارف نیست یعنی از تا اونجایی که من میزنم از زمان شیخ رو من دقیقا تقرات شیخ نیست فکر میکنم قاعده ملازمه رو نداره لیکن در کتب اصول قدیم مثل فصول این ها هست اینکه از فصول اصول قدیم ما قاعده ملازمه بود آن اگر مسئله اینها مراجعه کنن اصلا فصلی داره در قاعده ملازمه کل محکم به اهل حکم به افشاء اما در این کتبه ما متأخر ما مثل مرحوم ناینی و شیخ و مرحوم کوینا اینا دیگه متعرض قاعده ملازمه نشدن اول جذب مسئله رو عرض می‌کنم مرحوم ناینی قدس الله نفسی یه در قاعده ملازمه داره که اینجا استاد کار بودن و از استاد دیگه مرحوم آل کوینا از یک خلاصه کلام بقول موسومهشیان تیطی و مثلا رسواری لیستواری یک تعبیر خیلی مجملی راجع به قاضی ملازمه دارن و به همین مقدار اکتفا کرده این کلمات استاد در اینجا همان حرف مرحوم نایینی است درست فرمودید خلاصه هر حرف خودش هم خلاصه است بیاله ایشان نکم باز بیشتر نذاشتن خلاصه حرف مرحوم نایینی که قاضی ملازمه در سلسله علل قبولش می‌کنه در سلسله معلولات قبول نمی‌کنه این خلاصشه خلاصید دو کلمه ما در سلسله علل احکام قاعده روشن شد این قاعده را قبول میکنیم در سلسله معلولات قبول نمی‌کنیم حالا مرادشون از علل احکام در اصطلاح اینجا مراد مصالح و ملاکات است مرادشون مرحله مصالح و ملاکات من چون توضیح کافی دادم برای حکم و مراتب قبل از حکم و بعد از حکم پس مرادشون از علم گاهی هم مثلا میگن ما قائل به اجتماع امرانه هستیم در مرحله مثلا مثل تضاد به بین احکام رو قائل نمیشیم فی بین احکام و انفسا بدانشون تضاد نیست الا بلاحاظ مرحله, مرحله مبدأ و منتها، اونجا تعبیر میکنم مبدأ و منطقه مرادشون از مبدع باز باز ملاکه <تص> یعنی دوتا مثلا میگن بشین و بلند ننشین میگن بشین و ننشین اشکال نداره بخور و نخور میگه بشین نرسه تناقض لازمیه تضاد لازمیه بخور و نخور مشتبش کجا کجاست چون بخور باید ملاقات داشته باشه نخورم ملاقات تو مرحله ملاقات دارن یکی از اون مرحله منتهی اصطلاحاً مرادشون از منتهی مرحله انتصال به راخری بخور یا نخور تو مرحله انتصال چیکار میکنید این که اونجا به کار میبرن تضاد به بین احکام به لحاظ مبضع و منتها مرادشون از مبضع ملاکاته مرادشون از منتها مقام انتصاله اینجا هم مراد نهایی از مرحله الال مرادشون ملاکاته از معلولات هم مرادشون مقام انتصاله این اسطلاح یک کمی جا شده معنا یکی من توضیح بده من رو داری نیفر. چرا رو گرم اصلاح و اصلاح و اصلاح یعنی امتصال به این معنا اطاعت و اصیان. معلول یعنی شون این معلول جر گرفتن معلولش هم نیه این سال تعبیر تحبیر معلول کردن چون مرگمه استال این تعبیر رو به کار گردن ایشون ان فرماین این نخوکمالعرض به معنی ادراکی لیسه الا فسار هفن یودرک محوفی سلسل ته الال الاحکام شرعیه من مطالح و محاسب این مرحله الال رو گرفتن در صفحه بعد و اخرای را کلا اقوی ما و فیلم هسته معلولات اقوی ما شد این مرحله ال و معلولات خوف شد یکیش مردود میشه مقام ملاقات ملا... ما تعدیر به ملاقات میکنیم اما رو مستاد مساله همه خاصه تعدیر یکی هم برمیگرده مقام اطاعت و اصیام حالا ایشون این اطاعت و اصیام رو معلول گرفتن تعدیر معلول در اون اصطلاح مبدع و منطقه گرفتن در اصطلاح قبلی در این اصطلاح الال و معلولات گرفتن روشنسو. مراد جدی که خلاصه قرد اینه اگر در رسوه الال احکام باشه میشه از ایک قادر ملازمات قائل بشید کل ما حکم به الال عقل حکم بهشن مراد از مرقبه الال در اینجا مراد چیه مرادشون از مرقبه الال عقل ادراک بکنه مقصده ملزمه چون ما غالباً ادراکات عقلی ما کم میشه مقصد خالص باشه یک کلموش مصلحتم هست مصلحت خالص و خالص هم کم میشه مثلا توی شر مثلا میگن آب بخوریم برای فلان خوبه هم برای فلان قسمتی معده مضره همیشه یک خرابی و به اصطلاح کسر و انقساری میخوان لذا اینا میگن حالا اون شر کسر چون صادران در مبارسه. او عوامل به مناسبت اون طراشه میگن یه که ما به ایجمال بحث رسیدش اینا اینطور میگن اگر در جای عقل ادراک مصلحت خالص الزامی دق یا مقصده خالص الزامی مرا در خالصه یعنی بعد از کستر هایکشار ها پس 20 درجه مصلحت بود و دو درجه مقصده بود بعد از ک های اقزار شده این و هجد الزامی، شن اگر استهبابی و رجحانی باشه اون هم اثبات پس شما مقصده خالص الزامی بوده بکنید اگر احراز کردید بگید حرام مصلحت لامنظمه به اصطلاح مصلحت راجحه بدون مزاحم مصلحت خالص اون مزاحم میشه باید رد بکنید مصلحت خالص الزامی این اصطلاح اینه از اینکه هلاله احسان ما اگر مطلب خالص ارزانی رو درک کنیم، از او اثبات وجود می‌کنیم. قبلاً صلات نهایی از پرشه چون شون نمازشون نهی از هر هر هم که یانهای از پرشه آلمونکه به همین پرتی، از او اثبات به اصطلاح وجود می‌کند. این رو مرهم استاد خلاصه که این مطلب مطلب خوبیه تو مث، این, این تعبیر رو ایشون به کار بردن از کم احذان از مرهم ناینی، لیک حلمات پسار این قاعده ملازمه رو ایشون بحث نکردن به همین مقدار اتفاق کردند کل ما حکم به ال احکم حکم به شر در سلسله ال احکام مستقلات بله مستقلات تقریبا برمیاد اما کل ما حکم به ال عقل حکم به شر در سلسله معلولات جاری نمیشه این خلاصه حرف ناینید مرادش هم از سلسله علم یعنی اون چی که مربوط میشه به مقام ملاقات. مرادشان از مرحله معلولات که یعنی اون چی برمیه به اطاعت و اسیان اطاعت و اسیان رو که عقل حکم میکنه اثبات و حکم شرعی باشه نمیکنه عقل حکم میکنه ما اطاعت شارع بکنیم اطاعت خدا عقل حکم میکنه اما حکم شرعی در نمیاد که اینجا خوب دقت کنید مراد روشن شد؟ این مستلزم حکم شرعی نیست ملازمه با حکم شرعی نداره بقولان دور لازم میاد شن اله حکم شرعی میاد باز اون حکم شرعی با اسم عقلیاتی هم تو مثال دور دشا معروف دو که این مساله دوام هم این همون نزاع معروف بین اشعاریه و معتزله عقلی گراها به طور کلی به امامیان در این جهت با معتزله که آیا اوامر الکی الله و اخو الرسول مولوی چا رشادی اشعاری به حسب حساب فرق نمی کنه بین علی مصطفی و علی الله مثل هم هر دو رو مو... روشا هر دو مولوی گرفته مؤتذره گفتن که عتی الله نمیشه امر مولوییش بش بیاد چون دور لازم میاد. ولی بله مؤتذره رفتن به اشکال. ادبیه به قول خودشون، اقل قرر گفتن عتی الله دیگه نمیشه ما حکم کرده چیه. ببینید پس مرامینایی چی می‌خواد بگه؟ این عتی الله حکم عقل مستفعه حکم شرع نیست. مستلزم حکم شرع نیست. ملازم به حکم شرع نداره. کل ما حکم روشن شدی مراد قاعده چون اگر این قاضی کل ما الی اردو حکمنده شر رو ما الان در اصول خودمونیم که متوارف گوزاست مثلا فرض کنیم کیفایی میگونم ثبات من راینی آقای پوری تو این بحث ما نداریم تو فصول داریم چه پسش قاضی ملازمه است در اصول قدیم داریم چند سفر نوشتم وجوهی هم ذکر کردم اما دیگه تو اصول ما برداشته شده در اکتفا شده به همین مصطلح مختصری که مرحوم نایمی فرمودن ما قائده ملازم رو در سلسله علال احکام قبول میکنیم در سلسله محلو قبول نمیکنیم خلاصه بحث در سلسله علال احکام یعنی در مسئله مصالح و مفاسد ملاخات محیار این بشه هر جا عقل احراز مسلحت خالص الزامی خود چون مساله همیشه معارض و مزاهم برن بعد از کسوانی کسا اون مصلحت خالصو رو ببینی اگر الزامی شد حکم وجود در میداریم الزامی شد حکم استحباب و تظالب در مقصده اگر مقصده خالط الزامی بود در اونجا حکم حرمت، قسمات تو سلسره علل میتونیم رو اثبات بکنیم اما در سلسره معنیات یعنی مقام افعاد رسیان حتی اگر شار بفع الله و اتیال رسول این تأکید حکم عبله. این خودش مولویت نداره خود اتیالله نداره این هست خلاصه از من یعنی حکم عقل به نظروم اطاعت شارع هست نه نیست این حکم عقل مستقیه به حکم مولوی نیست کل ما حکم به الاغل حکم به شهر توی این مرحله نیمیشه داشت حکم شر در بیاریم فقط عقل صرفه اینجا دیگه ملازمه نیم این خلاصه نظر مرموم استاد قدس الله نفسیه که از اصطادشون من آید بجردیم در درست که را ما ش این مسئله است که خلاصه کردن قواعی ملازمه را حالا چون بحثش مثلا یه مقداری هم بد نیست به لحاظ تاریخی نامتحرز بشی ان شاء اینشالله تعالی ان فیلم بحث بعدی که موافقت الزمانی است بحث بعدیش که قطع حاصل از مقدمات غیر شرعیه مقدمات عقلیه که اخباری گفتن واجبی نیست اتباخش اونجا ایشالا متعرض میشین قاضی ملازم روشین بر اونجا بحثش اونجا ان انجام میدید چون در کتب اصولی فعیلی ما موجود نیست یه غضر راجبی مثلا اونجا به مناسبتی صحبت خلاصه و آعده ملازمه در سلسله علال قبول دارن آره کویی در سلسله معلات نه روشنجو اون هم در سلسله علال ایشون قبول میکنن اما یه مشکل داره اون مشکلش اینه که سلسله علال یعنی کشف مناساز و مثاله ایشون حرفشون این ازده ایشون اینجا نه اما ما عبارت اینشون رو خلاصه کردم هم اینجا دارم جای دیگه کرارن دارن اینه که احراز مصالح و مفاسد با عقل بشری بسیار مشکله اون مسلحت خالص یا مسلحت خالص این مشکله سقراش مشکل این که ما چه مسلحت خالصی داره چه مسلحت خالصی الزامی داره این رو احراز نمیکنیم. کنیم این ایشون رو در کتاب بحث اصولیشون کرارن که ما ملخص کردیم عبارتی که طور اپل به خطابات اون اصولا راه درست ما برای شناخت ملاک از خود خطابه نمیتونیم خطاب رو با ملاک پشتنسیم کجا ملاک هست راه درستشونی کجا خطاب هست اگر خطاب ثابت شد میفهمیم ملاکات بوده طبق ملاکات واقعی اما خود ما بخواییم ملاکات رو احراز بخواییم مشکله یکیش اولا ازم احاته ما به جمعی اجهاد سالیان چون اینا مزاهم دارن و تشکیف این که این مزاهم چه تأثیری داره که این وحثش سابقا هستم تکار نمی و و سالسا مصطفا در مجموع آیات و روایات ملاکاتی رو که شاده قرار داده ملاکات دونیوی و برزخی و اخریه این ملاکات خاص دونیا نیست، به نیسته خاص باشه ملاکات برزخی هم هست ملاکات و هم هست در آیات و روایات خرابان دیگه چیزوتو نیست، و و بدون شک عقل بشری خیلی حاطه پیدا کنه، یه مقدار از ملاقات دنیاوی، برزخی و اخروی را اصلا خاطرش نمی‌کنه. و لذا ایشون از این راه ورش. پس بحث ملاقات اگر باشه، مشکل احراز ملاقاته. این راجعی بعد می‌فرماید و اخرا یدر کنه عقل. البته این که ایشون که قاعده ملازمت رو گرفتن رو حکم عقل اولا حکم عقل و مرمه ادراک گرفتن این یک ای بحثی که عقل عملی حقیقتش میشه ادراکی یا اون بحث دیگری است ایشون مصبت تق... اینجا تقریب نقرموندن الان هم تو زهنم نیست کردیشون در بحث چنده باشه که حکم عقل عملی رو ادراک گرفتن لیسه الله خبتن لیسه الله شبیه حرف اصطادشون مرموم آقا اصفانی یا که مرموم آقا اصفانی ادراک ینبری همی ادبه ادراک واقع گرسند واقع به ما هو واقع چون یک نظام عکمی هست اقل عملی این که انسان ادراک واقع رو بکنه مواقع و واقع این حالا من نمی فهم ایشون این اول ویلالای اول این حکم العقل نهو برای ادراکی لیسه الا ارجاع ویلالعقل نزد این هست ادبه از آقایون اقل عملی رو ارجاع به اما الان من نمیتونم بیشان نسبت بدن که دقیقا مبنایشان چیه بعد ایشون میفهمن تارتن یوزرک ماهون سلسله خب همی که توضیح هرک بعدم در سلسله معلولات ایشون میگن در سلسله معلولات چون به اطاعت و اسیان در میگرده در اونجا دیگه عقل صحیح اطاعت رو درک میکنه اما نیمیتونه حکم شریع ازش درک این البته ایشون از این به این بحث از اون صفحه 26 تا صفحه بله 27 که ایشون توضیحی دادن آینوشی مراجعه بکنن یه توضیح که خیلی نیاز بهش نیست مثلا نوشتن راهازا و لنا برهان آخر یه برهان دیگه اقامه فرمودن که اون برهان ایشان دو شکر کردن شکر تبرش اصلا تبدیل احتمال نداره لیشون ذکر کردن و رد دمترن اون باطل افی آقا این کلمات رو بخونیم یکی توضیح بدیم یک کمی از خارج میکنم اصل این مطلب درسته یعنی اصل این مطلب چون اطاعت به اسیان سر حکم شرعی است خود دقت بکنیم از که ایشون تأبیر دن آقا معلولات کردن ما تأبیر به معلول نکردیم مرتبه تأبیر کردیم به جای تألوم از کلی بعد از حکم شرعی سه مرحله وجود داره مرتبا هم درست نیست مرحله یکی مرحله فعلیت یعنی ابلاغ و حکم شرعی یکی مرحله تنجاز یعنی وصول و حکم شرعی یکی مرحله امتصال این اطاعت این مراحل اصولاً بعد از جعل و حکم شرعی و چون متأخر هستند نمیتونن خود این مراحل تأثیر بگذن در حکم شرعی یعنی به این معنی که استثباه و حکم شرعی بکنن همین که ایشون کننده دور لازم گرد. یعنی اشکال اساسی اینه. اطاعت و اصیان نسبت به حکم اولاد. اگر حکم ثابت شد اطاعت و اصیان به حکم است حکم ثابت نشد ما با لزوم اطاعت نشون اثبات و حکم کنیم. و اگر جایی هم حکم ثابت شد بگیم حالا که اقلیت اطاعت لازمه فقط شاره هم گفته. خب اگر شاره گفت همون اشکال. باز این حکم شرعی یک حکم ا اصولا احتیاج رو به استدلال و به تحضیحشون برهان برخان نداریم امر واضحه فی نفسه مثلا احتیاج به استدلال نداره امر واضحه که این مرحله یه مرحله است که بر گرده به عمر برمی به شعن مطلب مرحله این دیگه مرحله نیست که شارع بیاد طبق این مرحله باز حکمی طبق حکم اول جعل بکنه قید اصلا معفول نیست این خودش متأثیره به جلد. این خودش در مرتبه بر... به نمیشه معلول اسم معلوم در مرتبه بعد از جهل نمیتونه تأثیر که بیداره برای جهل انصافاً متلاً واضحه به نظر ما از بیاج و برهان هم نداره این نمال کلام اینا بحثی که هست در آیات مبارکه اتی الله و اتی الرسول که الان اشاره هست کردن. اهل سنت اشائرشون هم کردن بر مولویت و معتزله هم برای ارشاد کردن اشاره کرده و چون طونی در درس ما نمیخواد تکرار بشه ما ارز این احتمال داره که غیر از حالا ارشادیتی که حضرات شیعه امامی هم قال شدن و معتزله احتمال داره اصلا مراد چیز دیگری هم باشه از آیات اینطور نیست حالا ارشاد صرف باشه که آیه مثلا اطی الله و رسول و ال امر منکو ما خانه المؤمن و لا اذا الله و رسول امره همین یک کنون لحمل این ناظره به همون نکته باشه که ما چند بار کران عرض کردیم اون نکته این باشه که آیه مبارکه ناظره به این باشه که تنفیز قوانین الهی هم باید الهی باشه این عطی الله تو مرحله تنفیزه نه تو مرحله تقریم و قانون گذاری بقول قول ایرانی قوه مجویه این نکته آیه مبارکه این باشه خوب دقت بکنه از که بقید نه ا یعنی همچنان که تقمین و تشریف و قانونگذاری حق خداست مرحله تنفیذ و اجرا که استراهم ما بشیده امامه هم مرحله تنفیذ خب اونم باید الهی باشه یعنی در حقیقت نزاع اصلی ما با اهل سنت هم همین اینه دیگه اونا میگن تقمین الهی اجرا بشریه ما میگیم هم تقمین الهی هم اجرا الهیه این اجرا الهی بوده هم ولی در این مرده یعنی اطی الله و اطی الرسول و الله نمیدونم که در از صحیحه طریحه داره و صحیحه هم از روایت تو تفسیر برهان در دلایله مبارکه نظر از سینا خاصه امام دوفردند این اول ال امر اینا نیست صحیحه شما خیلی تو جامعه اختر که بشه تنفیح بشری احتمال داره این اطی الله و اطی الرسول مثل این شما مو آیه دیگه هم داره الله, الله و رسول فرند اطی الله و الرسول فقط داره مثل این آیه را, را عرض میکنن مثل این آیات اصیع الله و اصیع الرسول و علمه من ارشادی نباشه که آیانالا علمای ما فهمیدن ارشادی نه یعنی اصیع الله در جامعه همین بخواست که وقتی امام گفت من گفتن برای همین اثبات اثبات باید کرد باشه, باشه, ده باشه ده اصلا هدف اینه که شما وقتی اطاعت امام کردین اطاعت رسول و رسول, رسول, رسول و لذام اسبا... مثلا مثل پهرازی قبول میکنه یه انصافش اگر ما باشیم و ظاهر آیه اسفت در میاد اسفت و علم در میاد چون محدودی نیست و در ادل اطاعت و خدا و رسول قرار داده شده نقطه شما تمام نکته همینه اصلا نکته اساسی این است که بگه در مرحله اجرا و قبل مجریه این هم باید من قبل الله باشه این اختلاف ما با سنیان دیگه اختلاف ما با دنیای جدید از اولش اونها میگن تقنین ان بشری اجرا هم بشری اهل سنت میگن نه. تقنین الهی اجرا بشری ما میگیم هم تقنین الهی ان اجرا الهی هم تنفیذ الهی این تنفیذ الهی اون بحث ولایته اون بحث امامتشه گرازم پس این آیه اینطوری که آیم به ذهنشون رسید این ارشاد نه به که ارشاد می این آیه مولوریت داره به این آیه ناظر ویینه که در جامعه اسلامی اجراای قانون به ید الله چطور شما اطاعت خدا رو اجرا میکنید اطاعت امام و دار اسمت در میاد یعنی باید اول ام کسی باشه که در اطاعت او در رسوی اطاعت الله و رسول باشه او منزه به او معصوم اینه که با بعضی‌ها میگن اول الامر پادشاهی و هیئت وزرا و دولت و مجلس و این رشید است ازاس و المنا نوشته شامل اقیقت دولت و مجلس و پارلمان و رأسای ادارات و بعد رأسای صحف و مجلات و سردری و هماره نوشته نوشته چاپ دردش من شروع میکنم صحف و مجلات و هم حرفه این رو برداشی این مرد آقلشون های روشنسکر های احسان روشنسکرشون میده شده هم از محمد عبدال گردش شاکر در عبدال معرفش این تفسیر هست براه خیلی برد به صحف و جراید و مجلات میگم میکنه به صحف و جراید و مجلات و سردویرها و وحیط از این دکت میکنی نقطه کار رو بلا بله, بله؟ میگیرم اولو همین جامعه هستند میگم اگه جرائد و مجلات نه نه این سوقت میگو دیکنی عقل سردست بله بله فکر نه رو همه که اینجا بگم تو این مجلات اینجا را بله این آیه چطور با اطاعت الله و اطاعت الرشید را با هم مقایسه باشه باز حالا من باز این بحثی میخوام بشن اده از آیات به نظر ما اینطور نیست که آیه متون ان گرفتن آیه خو هم اینجا فرمودن دیگه من چون وارد این بحث نمیخوام بشن که این آیات ارشادی باشه مثل این آیات که ارشادی نیست مثلا ما از این آیه مبارکه بفهمیم بی یک جعل جدیدی خدا فرمیده و اون جعل جدید این است که باید تنفیذ قوانین هم به یلد الله باشه. همینشان که تشریع به یلد الله، عظمت دین و حقیقت دین و قداست دین اقتضا میکنه که تنفیذ هم الهی باشه. تنفیذ بشری کافی نیست. چون اهل سنت به اصطلاح این بحث ولایت فقیه هم در حقیقت همینه. اهل سنت هم ولایت فقه رو قبول دارن. یعنی فقه تو جامعه باید پیاده بشه. دین تو جامعه باید پیاده بشه. حالا حاکم باید پیاده بکنه. چه مقدار شرعی باشه نباشه فوقها تشکیف سازه اما ما معتقدیم ای برای این که فقه باید در کامعه جاری باشه متصدی هم باید امام معصوم باشه یا منصوب از قبلیشان باشه مجرد ولایت فقه کافی نیست مجرد تقریم الهی کافی نیست تنفیز و اجرا هم باید الهی باشه این تنفیز و اجرا الهی اسمش این اطاعت در اینجا به این معنی آمده ل که معتظله آیه مبارکه رو بردیزم پس ارشادی گرفتن چون اینا این فهمشون از مثل آیه همون فهم عمومی اهل سنته و بله اگر این معنای رو که ما عرض کردیم این معنا ارشادی نیست این معنا موردیه و اما آیات دیگری که درش عطی الله و رسول یا عطی الله و عطی الرسول تنها آمده احتمال میدن من در حد احتمال باید به موارد نزول آیات نگاه کرد شاید در اون آیات مبارکه نظر به چیز دیگری باشه خیلی از ارشاد و خلاصی اون نظر این باشه چون در ارتکاز عمومی مردم ایمان به خدا بوده حتی مشرکی که در آیات مبارکه بهش تصویی شده خدا می‌خواد تأکیب بکنه بر این نکته که اطاعت رسول با خدا یکیه شما که میگیم ایمان به خدا دار ایمان خدا بدون اطاعت نمیشه اگر میخوایی دستورات علاقی رو اطاعت که اجوار اطاعت رسوله یعنی این نکته نظر به این باشه شما بگید من خدا رو قبول دارم اما کی گفت این دین خداست کی گفت این رایست خدا ما کرده. این نکته ناظره به اینه یعنی بحث ارشاد صرفی که الان هزارات ما قائل هستن نیست بحث مولوی هم که علمای اهل مثلا اشاره قائل ه اون اشاره به اون معنای از مولاوییت نیست مولوی هست به معنای دیگری یا به معنای همون مسئله لزوم اجرا و تنفیذ و مسئله امامت و ولایت یا به این مسئله دوبا میشه از کردم دیگه چون بحث و رقصه قرآنی میشه فعلا از اون بحث خواهد اون مولوی خب ما وظیفه داریم <تصفح> یعنی خود الهی اون قرار وظیفه میکنه که شما وظیفه‌تون این است که در تنفیذ هم الهی باشه خودتون اینو تنفیذ بدید. با خب مخاط همینه بگه تمدید همونه. یعنی به اصطلاح اطاعت خدا در جو... در اجرا اطاعت خدا در اجرا میگیم جیو به اجراش بکنیم در به بر انجام میدین این اطاعت خدا در اجرا و نظام ما کامل مؤمن علاوه مؤمنه الا قضا الله و رسول الله. و خدا اضافه قضا الله شما ببین کجا خدا اینجوری گفته قضای الهی دیگه چجوریه اون داره شروعو برمون رسول که گفت خدا گفته ان کنتوم ته بون الله فكتبونی یحدث کوم الله این این آیات ناظر به حقیقت نبوود و حقیقت رسالت نه اینکه ناظر باشه به یک امر فلسفی بیگه ارشادی صرف لزوم اطاعت پس نمیخوام میگم مولوی هم هست این آیه دوتایی هم نداره. اینا که نداره ها مولوی نیستن بلکه ارشادی با اون که این گرفتن نیستن یه نکات دیگری در آیات مبارک هست برکه اماکان ایشان قبول میکنن کنن حکم عقل رو مروم استاد به قبع تجربی و تمرد لیکن این مستلزم قبع عمل نمیشه مقدمه واجه. چون در مقدمه روزی چون ملاقات در معلولات در مقدمه واجب نیست از ملازمه اونجا نیست معلوله اصلا ما دستا رو نگه تو مقدمه واجب از اون راها نرسم راه, راه گیر است حالا این بله اینی که گفتن معلول درست نیست تغییر معلول به نظر من بگن تأخر مرحله ای چیزیه الیتی بینشون نیست چون بعد از اونه خیال می کنم پس نتیجه این شد بحثی رو که استاد مطرح فرمودن قبه تجربی به عنوان قبه فایله قبول به عنوان تمر آیا این قبه به عمل هم سرایت میکنه کنه مثلا شرب ما به عنوان تمر رو دعلا المولا بشه ایشون فرمودن نه سرایت نمیکنه. کنه به ایشون فرمودن سرایت میکنه کنه قبه آب شوربه آب به پیدا میکنه، لكن قبحش چون عنوان تمرد و اسیانه این موجب بقای ملازم، موجب حرمت نیست. این خلاصه نظر مبارکی ایشان. پس قب فاعلی رو قبول میکنن، با عنوان تمرد و این قول به عنوان تمرد و ظلم بر مولا، هتک حرمت مولا موجب قبح اون عمل میشه، اون شوربه آب قبیح میشه، اما موجب حرمت نمیشه. به همین نقطه ای که هسته بحث آخری که ایشون فراموندن این که حالا که تجرید و قبحش به عمل سرایت می کنه اون فاعلی داره با مظهر تمرد و ظلم و بر مولا آیا به این عنوان استحقاق و عقوبت هم داره ایشون قبول میکنن که داره ولی یه چیزی هم حدی هم بر صاف وصول میکنن که بعد الان توضیحش ارزمیکنن اصلا خدمت باسه اون که این مسئله رو که ایشون که میشه به خاطر این مطلب هم روشن است که حالا من بعد خلال بحثی که عرض می کنم مطلب روشن میشه پس خلاصه نظر مرحوم استاد این است که تجری خوبه فاعلی داره و عنوان بر مولا، ظلم بر مولا، حتی حرمت مولا این قوه فعلی هم داره به عنوان تمرد نفسه این شربه ها چون تعرض به عنوان تمرد این قوه پیدا میکنه اما موجب اقام بر قوه فعل نمیشه اما قبح خب فائلی استحقاق و قبود داره اون تمرد عنوان تمرد قدیه هیست که استحقاق و قبود خب این تمرد هم چون تو مرحله متعشره استلزام حکم شرک یعنی احاق رو نیمی در داره برن چون تابع حکم شرکیست این مختصرش تفصیلشی بعد آنها واضح میشه بعد مرحوم استاد سه تا تنبیه در اینجا آوردن این که این بحث سجدی در قطع تریقی نه قطع موصولی. اگر موجه از مقام خارج درستیم ما پس ایشون نام داشت در شلال بحث اول اشاره کردیم کمبیه دوم مسئله است که ما در مقدمات آوردیم که آیا از ادله شرعیه در میاد حرمت نفس معصیت یا نه ایشون رو بحثش و قبول نکردن و اینجا هم ما توضیحش سابقا مفصلا گفتیم کلامیشون خوندیم تنبیه سومی که ایشون داره کلامی از صاحب اصول ایشون اجمالاً کلام صاحب اصول را حالا خود من اینجور مبانی که ایشون فهمونه خیلی از کلام صاحب حسول نفهمیدم حالا دیگه آهی میشه خودشون مراجعه کنید چون من خیلی این بحث ها رو در کتب های کتب احضر از و شیعه زیاد شده که خلانی مرادش این هست نیست ایشون در آخر فرمان موازد کرده مشتمل مشتملون الان دعاو سلاس ارجال دادن دعاوی کلام صاحب رو به سه تا مطلب یک یه... دیگه حالا فهم استاد حالا شما اگه برگشتین گفت اینا نیامد اون دیگه خیلی ما نمیخوایم توش بحث بکنیم حالا فرض یک قائلی این سه مطلب رو فرمودن یک ان القوم لا یکونو ذاتیان التجربی اون ذاتی نیست در قام و لعن یختل بالوجود و الاعتبارات به وجوه اعتبارات و این رو یک فرمودن البته ایشون یک و دو کردن اون دو با یک تقریبا یکی در میاد از ثانیه جاده توجه با اختلاف و تجربی این دو تا یکی هم تقریبا در کلام صاحب اصول این هست مجموعه است صاحب اصول میگه کسی تجربی کرد که این معصیت انجام بده بعد معلوم شد که نه معصیت نبوده مسحوح بوده خب یه درجه از خوبه بعد میش معلوم تو مباه بوده یه درجه است بعد معلوم تو مستحب بوده ایشون میگه ما واقع رو نگاه میکنیم با واقع می اون واقعی که درجات قبه تجربی معین میکنه مثلا خیال کرد این شخص یک کافر مهدوردنه و, و من ازاله که نکشتش بعد قید منون شد یکی از پیغمبران الاهیست. خب این حسنه بعد منون پسر کسر مولاست مثلا. بعد منون که کافر هست اما مهدوردن نیست بعد منون یک مامان فاسقه کافر ببینید ایشون یک مراسب تباییان عملت میکنه کنه قبعه این مراد از امر اول و دوم ایشان اینه که مرمون ساق اصول داره. یک مطلب دیگه هم داره تداخل اقابه اند مصادفت محصیت الواقعیه میگه اگر تجاری که به که این شراب بخوره و بعدم من دو تا دوتا داره اقاب تجاری و اقاب محصیت لیکن با هم تداخل میکنن این سه تا مطلب خلاصه ای که مرحوم استاد استاد نهاره فرصم درسته من وارد این بحث نیشم که دقیقا مثلا مراد استاد پسید برکشون فرمزن و این دعاوی فاصل به تماما هرسش باطله اما دعوای اولا تجری ار المولا و حد که او به نفسی مثل آقان زل و قبه و قبه هلا ینفت فعند زل حالا من نمیتونم ایشون ذاتی میدونم یا نه نمیدونم فلا ینفت فعند بلی یه طرف نه و طرف تو بالمعلول علا تامنه اما دعوای دوم اگر قبول کردیم اختلاف تجری لایمکن ان یکون اله غیر الاختیار را پر اند قفه غیر اختیاری که این بچه مولا در بیاد نبی در بیاد کافر غیر محضور دم در بیاد این نیمتونه قفه شه برداره و جات واقعی ما اصل و اما دعوای سلوان ایشون میگن اتحاق اقاب دارمان یا دور مدار حد که المولا و تعدی علی بلا فرق داره که بین تجریر المعصیه ولی سفر مرسی از الواقعی کن واحد یک حد که دیگه دوتا نیست فلا مجا ملاکل تحدد اقاق این, این خلاصه است ای که از که ایشان مرحوم ناینی دیگران به صاحب حصول وارد کردن ارس که من نمیخوام همشون که ارس کردن نسبت بدن حساب. صاحب هم فکر میکنم با تامل در کلمات صافوسل من واقع خود من اینجور میفهمم حالا صافوسل نه هرمیه مراز صافوسل اینه که اصولا ما در باب معصیت دو ملاک داریم نه یک ملاک ایشون خلافت از ظلم نه دو دار. یکی قبه فعلی داریم میشه قبه فاردی این سر این که ایشون تداخل اقابه میگه غیر از این توجیه نداره یعنی در هر جا که شما حساب بکنید حتی تو معدت واقعی مثلا شور بخم کرد یک اینکه این آم این مثلا شراب کنه دو اون حالت نفسیش مثلا بیمه بود چرا کنه نه با میل چرا با عنوان هست که مولا شد ببینید اون حالات نفسیش رو هم میکنه این شماحات هر دو قویهه یکی قوه فعلی داریم یکی قوه فاعلی داریم یکی کسی نماز میخونه یکی کسی فرستون فلج شده بولا شو نماز بزن یه کسی عادت به داره که به نماز افراد نگاه نکنید خیلی مغرور نشین که گربه عاد نماز کرد خیلی به نماز چون ممکن اینطور عادت کنه در واقع این چه که ممکن اینطور عادت یکی نم با شوق نماز, نماز. با حالت معرفت الله. کامل نماز حالات ایشان محال این حرفه بزنه که هم در تجری و هم در انعجاز هم در و هم در ساعت ما دو چیز داریم یکی برمیگرده به فاعل یکی برسه که چون مرادش ظاهرات این باشه ظاهره ولی از هر لحاظ می حالا ایشان توضیح نداده که این دو تا لحاظ چه تأثیری داره حالا این فلاسفه بنده اضافه می ممکن است بگیم اون چه که به بر میگرده در کدام یا ثواب تاثیر داره اون چی که به فائل برمیگرده در کیفش مثلا تأثیر مثلا اینجور جمعه بالاخره که یک تأثیر داره اون یک تأثیر داره ایشون بها یه هم جهت قبه فعیلی داره هم جهت قبه فعیلی و حضرتش اینه قبه فعیلی همیشه یکیه قبه فعیلی فرق میکنه این درجات تفاوت این که بگه تجربی تفاوت درجات داره یعنی ایشون با حالا مراد سال کسول این باش الان. قبح فعیلی همیشه یک جوره شعر بخار شعر بخار همیشه یک جوره اما شما که شما چیزیون شعر بخار بکنیم اون قبح فائلی فرق می کنه یه دفعه فرسون بلا اراده داره توی محیقی بزرگ شد پدرداش شما شراب خوده یه شما بین نه میخواد فرسونید برای خاصون خیلی میکن... فکر میکنه برای سلامتیش مفیده یکی فکر میکنه برای مرضش مفیده و حالا میگم فکر دیگه نه من شراب میخام اندر به خاطر عناذ با خدا به عناذ با رسول و برای اهانت به اسلام خب این مرکوم اكو نظر هر ضد بدی هم نیست هر پیشا چون ایشون قبح فاعلی رو مثل قبح فعلی یکسان نمیبینه قبح فعلی رو یکسان خوب روشن خبر رو داد فعلی دائما یک جوره شربخن دارم شربخن بیرد یکیه اما این که فائلی که شربخن را انجام میده او حالاتش فرق میکنه یه لفظ شربخن انعاده هم به او پفرسون نمیخوره هم نمیخورد میکنه آب در میاد یه لفظ شربخن شربت در میاد این انابینش به هیچون بخواد بگه تجربی این طوریه هم واقع در نظر میگیریم هم حالات فعل مکلن با اون مجموعه میکنه. پس قبه فائلی غیر از قبه فائلی حالا که این سال پسون مرادش گیه قبه فائلی دائمان یکیه قبه فائلی به وجود اعتبار فرق میکنه و در باب معصیت واقعی اگه پس اون شراب که شراب هر دو هست قبه فائلی هم هست اگه قبه فائلی نیست ایش که محاید ملاک وجود احاب برای هر دو هست اون ملاک چیه؟ هم قبه فعلی انجام میدم قبه واجی این ملاکشه. لکن یک عقوبت میشه. اما اگر مطابق در نیاماد فقط قبه فعلی هست قبه زینی نیست. مراد صاحب صاحب‌کتابو به ذهن من زینی حقیقیه صرف تفسیر اینجور میاد. ایشو ممکن این مطلب رو بگن اگر مطلب ایشان اینجور باشه این اشکالات فرابانی و فراماستاز دیگران وینوا وارد کنه خیلی وارد میشه. صلی الله علی محمد و آله تطه. تم همین می خب اجتم به اخیب هو به واحدمون نه اون پس یه تداداخلان دوکان یهقول احذ ما کممن و آخر کیف کان اوبت كرام... دن واحد از صدا خودنی